بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمان محترم موضوع الى كي امروز ما ميخايم خدمة شما بعرض برسانان لكي از موضوعات مهم است كي هر مسلمان وربايت بفرامه و زندگی روزمره خدا اعتقادات خدا اعمال خدا مطابق از او عیار بسازن این موضوع موضوع آزادی و غلامی است اصطلاح آزادی امروز زیاد در سر زبان هاست و یک مردم هم استلاح غلامی را در کار میبرن غلامی و بردگی که امروز مقاطبه که ما میخواییم خدمت ها نرز بکنم روی امید و مطلب است سوال اولی که مطرح میشه در اینجا که ما از خود پرسان بکنیم که آیا انسان آزاد هست اگر آزاد است از کدام انسان است و اگر آزاد نیست غلام و برده است کدام انسان است خداوند متعال جل جلالهو انسان خلق کرده انسان مخلوق است و وقتی که انسان مخلوق شد این مخلوق به خاطر پیشبرد زندگی خود مجبور است داخل یک نظام و سیستم زندگی خدایان بسازد زندگی کردن داخل یک سیستم این در حقیقت اگر این سیستم در نفع انسان باشه این از این نمیشه اگر نظام نباشه در حقیقت او گدودی است انرشیزم است که گدودی و انرشیزم انسان نمیتونه که به شکل نورمال زندگی بکنه به طور مثال اگر ما مکتب میخانیم مجبور است که مجبور هستیم که در مکتب خود ساعتای درسی داشته باشه وقت آمدن به مکتب معلوم باشه وقت رفتن از مکتب معلوم باشه اداره باید باشه سر معلم باید باشه معلمین تقسیم اوقات داشته باشند. اینال اون انسان جاهل است که در مکتب بوده که با خدا اینمین نظامی که وجود دارد در مکتب شما شما را غلام ساخته ما انسان هستیم و میخویم که انسانی زندگی بکنیم مجبور هستیم یک نظامی داشته باشیم که در تشکیل از اون نظام مطابق از اون نظام ما سهم داشته باشیم و سهم خود ایفا بکنیم و زندگی خود مطابق از پیش ببریم در با تو هم این, این قسم نظام وجود داره استاد معلوم است رئیس معلوم است محمداش معلوم است مدیر تدریسی معلوم است محسل معلوم است ساعت درسی معلوم است شوق شروع درس و ختم درس معلوم است به نوع اونجه همی یک نظام است مجبور است که با این نظام موجود داشته باشد وقتی که یک کسی در یک اداره کار می در یک دفتر کار می کار اداره و دفتر هم مطابقی یک نظام است اگر نظام نداشته باشه، قانون وجود نداشته باشه، در این صورت اینج قدوتی میشه و اونجا زندگی به سیستم درست پیش نمیره رن. اصل فلسفه رذیمه که وقت انسان میخواد به شکل انسانی زندگی بکنه، مجبور است در یک نظام زندگی بکنه. مشکل اینجا ایجاد میشه که این اشتباه مردم است که نظام خود ترک کردن نظام خداوند ترک کردن نظام الهیره ترک کردن انسان مجبور میسازه که از نظام دیگه ها استفاده بکند. وقتی که ما میگیم بنده خداوند هستیم چیمانا بندی خداوند هستیم؟ بندی خداوند هستیم که خداوند نظام رو برما تین کرده ما مطابق اینمی نظام خداوندی زندگی میکنیم و زندگی ما به شکل انسانی پیش میره اگر یک کسی نیه که نیم خودم میتونم ایجاد بکنم بازو میشم به نظام خود پیش لکن کل انسان است اونو دو چش که خداوند برما تاین کرده که دو چشم داشته باشیم ما دو چشم داریم. اعضای بدن ما با مو شکلی که خداوند بر ما تعیین کرده اعضای بدن ما هست پس ما مجبور هستیم وقتی که در وجود خود تسلیم خداوند متعال جل جلاله هستیم نظام خداوند سر خود تدیق بکنیم و تطبیق کردن نظام خداوند خود خداوند برای انسان ها یک سلسله آزادی های الهی را داده که انسان ها از این آزادی ها استفاده میکنند اما این آزادی را نباید کرد با بون آن بسیاری بسیاری وقتها بسیاری مردم هستند که بون را آزادی فکر میکنن. اینارره، اگر انسان تحت نظام الهی زندگی بکنن چون خداوند خدای همه هست. است. بر خداونده متعال آفریقایی و امریکایی و آسیایی و اروپایی بود انسان مطرح نیست یا ایها الناس اینا خلقناکم من ذکر و اونسا او مردم ما شمار از یک مرد و زن خلق کدیم و جعلناکم شعوب و قبائل و شما را قوم, قوم طایفه طایفه و ملت ملت و مردم مردم سختین لانتا لام لام تعلیل است یعنی بخاطر معرفت یکی دیگر که هرکس که در یه از فلانی منطقه است اینی میراث پدرش است اینی خانهش هیش هست اینی تحارف یکی دیگه تانه اما, ب... اما کی برطریت داره نیار برطریت به از خداوند مطال جل, جل در قومیت و در زبان و در چهره و دیگه پار نیست اگر میبود ببینیم دلال حوشی شاپوس بود یک یعنی حوشی بود عباسی عرب نبود، صیابوز بود، لکن ما رو شما میگه که حضرت بلال رضی الله عنه، و ما رو شما کل ما و حضرت بلال رضی الله تعالی می‌کنیم. احترام خاص داریم. و بعد صلی الله علیه و سلم در فتح مکه برای حضرت بلال گفت که برو سر بام مکه و ببین مقدس در این جایی که برای یک مسلمان است کعبی شریفه فهد. و خداوند متعال به حضرت بلال میگه که برو سر باع م... مکعبوره و اونجایی آزار بده تا مردم درس است بدان که امید سان ماندیلا که 27 سال رهبر افریقای جنوبی نلسان ماندیلا دارد ای این بازد Appartaid. امی Appartaid تغییر نژادی سیاهپوست سفیدپوست اروپایی و افریقایی این بازت دیگه پام ورزش میکرد. خب پرسامش کردم شما چرا 30 سال مکمل در زندان سپری کردین؟ گفت خاطر یک هدف که سیاهپوستا سفیدپوستا ما سیاهپوستا را هم مثل انسان فکر بکنن 27 سال در زندان بود. پیغمبر صلی الله علیه و آله دم اولی که فتح مکه کرد بسیاری از عرب‌های متعصب وجود داشت که ایمان در قلب‌های از آنها زیاد ذیبی جای گرفته بود و انتقاد کردند که چطور پیغمبر خدا می و در بین کسانی که عرب هستند، قندار هستند، قایفادار هستند، در بین از یا یک غلام سیاه‌بردار به دلیل اختیار می تا بر مقدس ترین مکان بالا شود؟ پیغمبر صلی الله علیه و به این مردم امسان ها و پیش خداوند متعال جل جل مثل دندانه های شانه هست هیچ عربی فضیلت نداره به عجمی هیچ صفتی فضیلت نداره با سیاپوست الا بتقوا مگر با تقوا ازی خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برشان قران مفهوم ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین شما به نزد خداوند متعال جل جلاله جل با تقواتر تن است این پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اسلوب بسیار قوی به شکل عملی به اصحاب خود میفماند خوب اگر می قومیت می بود اگر می زبان می بود اگر می برتریت در اسلام آل بیت پیغمبر بودن می بود پس کاکای پیغمبر ابو لهب از فامیل پیغمبر عربی هاشمی قریشی مکی عربی و از فامیل خاندان پیراندر. پس چرا درمیشه کریان از این میشولم؟ که سعی اصلا نارن زاد لحاب، از ابو لحاب داخل آتش میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ابو همه چیز داشت، یک چیز نداشت. چی داشت؟ تمام لقبهای که مردم جاهل سر زود تقارن میکنن، این رو ابو لحاب داشت. مهاشمیستم، مکریجیستم، من مکی هستم، من از فامیل پیراندرستم، من به توزستان ولی برعکس حضرت بلاساب از این لقب ها هیچ چیز نداشت ابو کل کنی ها را داشت و یک چیز نداشت چی را نداشت ایمان نداشت و بلال حبشی از این نقام های هیچ کدام شنه داشت یک چیز داشت که او ایمان بود بنا ان حضرت بلال که آن مجموع حضرت بلال رضی الله و حتی اولادهای خود بنام حضرت بلال ما نام بچه چیست؟ نام بچه بلال است کسی که صحابه پیغمبر دوست دارد اما اون کسی که اون رو دوست دارد با بنامه اون دور اولاد خودم ایمانه به این شکل این یه برنباشتم درس می که درس انسانیت و اخلاق درس انسانشناسی درسه که اینجا مهیار در انسان در عمل کرد و در شخصیت و در ایمان خود انسان بهفته هست. از این خاطر یک یهودی. یه مسلمان میشه حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی علمه. یک یهودی نه پیش پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم و نگه که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیه و سلم. حضرت پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم برش خباب و بیعت میگره که ایمان شما درست است چون این دین دین کنان قاوم خواست کنان طایفی خواست نیست اگر انسان در تحت قانون الهی زندگی میکنه این قانونی که انسان به اون زندگی میکنه این قانون انسان چی میسازه؟ چون خداوند مربوط کدام قبیره نیست مربوط کدام طایفه نیست مربوط کدام رن نیست او رب العالمین از خالق همه هست اگر انسان سر خدا به خداوند متعال سر سجده گذاشت این در حقیقت آزادی خدا از غلامی دیگر مخلوقات خلاص کرد اما کسی که از دین سرباد میزنه و بیندینی را اختیار میکنن در حقیقت خدا خواسته باشه یا نخواسته باشه غلام یک کس دیگه میشه بخاطر چی؟ خاطر میکن وقتی که ارتباط عزید با رب العالمین قطع شد با که ارتباط میگیره؟ با یک کس دگی ارتباط میگیره سر سجده برای کس دگی میگذره که او هم مخلوق است با چند قسم غلام ها داریم؟ یک قسم مردم ها هستن که غلام نفس خود شدن خودش غلام نفس خودش است. در آیات قرآن ما در نفس آیت شریفا می که یک آیت شریف نفس چی میگه؟ بسیاری کسا همیشه بد میگن و بسیاری کسا خوب میگن ولی ما میگیم نه. در قرآن عظیب شان سی قسم نفس تفسیر کرده نفس امارتونی به هست اول انسان نفسش چی میباشه؟ نفسش اماره ام را به چی مانه؟ یعنی که عمل میکنه به بیه ها گناب و شراب و اگر این انسان عبادت ای خدا را نکرد غلام اینمی نفس اماره را به پس این نفس را زیر حاصل خاصل کرده این انسان ای غلام خود ساخته و به طرف شهوات، ها و به طرف خواهشات نفسانی حرکت میکنه بفارمه یا نفارمه اما اگر ایمان داشته باشد با چی؟ نت سخونه تحت تاثیر خود میره وقتی که عبادت خداوان نکر اون نفس ام مارا به خودش غلام میشه پس نفس انفاره به سو انتقال میکنه به نفس لوامه نفس لوامه چی رو میگه کسایی که اصطلاحات و واجه های قرآنی رو میفهمن نفس لوامه نفس ملامت کننده یعنی کسی که نفس خود بیتونه که اصلاح بکنه چی میکنه؟ اونی انسان که نفس خود کار میکنه بلاخره نفس اصلاح احکام خداوند میشه باز ایره ملامت میکنه نفسش که چرا شراب خوردی چرا پیزدی میکنی چرا قمار میگنی و اگر احیانا گناه یه سر بزنه نفسش ایره ملامت میکنه پس شرمنده به طرفی خانه خود میره. نفس لبومه هست. ولی من انسان است. بیا دلم گفتم هر انسان که هست چی ازش اشتباه میشه؟ اشتباه که شد؟ انسان گناهی کنه؟ یک کسی چی گناه کردن نکرده؟ گناه انسان میکنه. کلیلو بني آدمها خطا تمام بني آدم مخلوقات که استان خطا کرد. ازش انسان نگشت میشه. لیکن اگر نفسش اگر غلبه نفسش شده بود باز نفسش برش میگه که خود کردی که بدی کردی. خود کردی بدی. پرو عوضاً دوام به, به. اما اگر نفس خود تحت تاثیر قرار باشه خوداونه بدی کردم پس نفسش ملامتش میکنه وقتی که نفس ملامت کرد پس می رجوع میکنه به با دربار خداوند متعال جل و میگه خدایا اشتباه اشتباه شد خدای من بد کردم خدایا دیگر دستم حاضر هستم گناهو هستم نتونستم خدا خداوند کنم پس به خداوند متعال رجوع میکنه و اگر عیلم انسان با هم سر نفس خود زیادتر کار بکنه زیاد بخواه نفس خود اصلاح بسازه باز این نفس عزیب از رو بلند روش که لومه هست یک ردبه بلندتر و تر که باز نفس مطمئنه باشه نفس مطمئنه نفسیت که خداوند مطابق قرآن عزیم میگه که یا ایتها هم نفس المطمئنه, المطمئنه, المطمئنه ارجعی الى ربی که راضیتا مردیه رجوع که با پروردگارت راضی باش ها هم تو راضی خداوند و هم خداوند راضی می سازد. پس نفس مطمئنه کدام نفس است که خودش از خدا راضی است و خدا از او راضی هست این انسان در یک نوه اطمینان قلبی حاصل می شه. از کجا حاصل شد؟ چون نفس خدا غلام خود ساخت نفس تحت تاثیر است. خودش به احکام خداوند متعال جل و جانبو می این انسانی که به احکام خداوند تمسک می نفس ازی بلا و نفس مطمئن نمیشه بچه که پیران حاضر میکنن با ارتباط قویه که با ذات خداوند متعال جل جالوه کسی که با خدا ارتباط نداره مثل چی ورس؟ مثل یک خس روی دنیا هست عرب پفش افتش میکنن یک روز غلام شورویست غلام القول غلامی ده گوش و چشم رو چرا چرا مگر باز می‌گره که شد باز می‌بینه که او بادار ازی خودی خوبم بوده بلاخره خودش که کس خوده باز می‌بینه که قبله خود تغییر میده و باز میره و بال به طرف دیگه باز با اونم لباسا و دیگه دیگه میخواد که بادارای جدید خود از خود راضی بسازه چون به خاطر ازی که انسان بی ایمان نه من به اونم حس دریاست که هر طرفیره دریا زامیره و گاییدو اون طرف و گاییدو اون طرف میخودش نشه سیحت داره، نه حثیت داره، نه ایمان داره، که امروز جیب از خو را جی از خود را هر انسان مسلمان اگر نیرو نفس خود اصلاح کده نفس مطمئنه دارد در با خداوند متعال قدیز تو انسان چیکار نمیتونی هیچ چیز قرار نمیتونی پیغمبر دست سلام به حضرت عبدالله ابن عباس درس میداد که یا اخنو بن ایون قولا ای دستت را این لیکو کلمات بچان کلمات را تالیاد میشون تو یاد بگی تا خداوند رو در حفظ و پناه خود داشته باشه چیستی کلمات یا رسول خدا برش که اگر تمام میکن دون حاضر شده یکی بکنن تمام مردم به خدا رو تو کمک بکن کمک کردن همین الا مگر چیزی که کتاب الله چیزی که خداوند برتون نوشته کرده هیچ چیز کار برنامه ای تانا از انسان قوی نکو و اگر كل انسان خود در تو بدی کنه هیچ چیز کار برنامه مگر چیزی که خداوند بر تو نوشته کرده کتبت الاقلام و اعلاق و جهته شده. ابراهیم شد قلموها برداشته شد کتابها ها خشک شد و انسان سر تسلیمی قرار ات از خاطر انسان هایی که به خداوند سر تسلیمی قرار نمیتن اینها در حقیقت خود آزاد فکر می کنند ولی آزاد نیستند غلام نفس خود استن غلام نفس خود شدن و نفس شور از نه حاکمیت میگرا و این نفسش است که نفس اما به سو هروجه سرازی چی میگرا سرازی سرآزی همیشه دو بنده من که حبس و عادم بر تو همه عمر سر فرودن با من چی برادری کنی تو چون بنده بنده من دید یک شیر است که این طرف حکایت از میگاد روز قزو مگر سکندر می رفت و هم از سپاه با او آن حشمت و ملک کجا با او یک طرف آمد نو را نو خرابه گذر کرد پیر از خرابه سربردار کرد پیر نشو که و پرنو در چشمه سکندر آمد از دور اینو بخریست ای سلطان سکندر در گفت که چبربر من اعتراض نکردی گوردوی خرابه ششتی؟ پیر میگه از سر شغل بون بر زد به سلطان سکندر واس گفت که من قهرمان استم من پاچای دنیا هستم کل میگی زیر تاثیر پیر از شغل بر نه فرق نروی تو یاد دادن از کیش آدمی تو دو باندای من،, دیر یک دو بنده ای من. و دیر میشه یکی دو باندای من چیز هر دو آدم استن بر تو همه آمر سرکلازن تو سخت ذکر تا غلام هر دو تستی غلام خانیات خود هستی این کوتوله من نمیروم خودتی با من چی داره داری کنی تو چون دندهای باندای منی ای تو تو خود بنده باندای ماست اما من, من که من بچو از تو از خاطر کسایی که از حکم خداوند سر خود دور میکنم به واقع اول غلام نفث خود میشه دو بازی که غلام نفس خود شد، نفس اماره به سو ارتباط با شیطان داره باز او این ارتباش می ده نفس اماره بازی به سو باز به بادگار وادار وارش معرفیش میگره. که این از جناب فلانی خان باز وقتی که ای امران شیطان ارتباط میگیرن باز شیطان خداوند متعال جل, جل, جل. چیده که چرا اینا مقید له شیطانا باز در نمی انسان یک شیطان وظیفه دار میشه این باز دوست شیطان میشه شیطان چیکار میکنه شیطان با هر گناهی که ای کرده میره و توبه نمیکنه و قرمداری از شیطان میکنه دیمونی شای... در قرآن از چی میگن؟ میگه ولات و قدواد شیطان شما پشت گام های شیطان نرین شیطان یک روز برات میگه که چه میکنی که نیشماندی ماندی ای نیشه صابر مردم میماندن آل مودرش ریش عقلکن د چی میکنی که منگی به سر میکنید به لومبی رووادی کن است آن مردمترینام میمال میای خودداوازن میکنه توقدر داتونیک بذاد این خطوات شیطان است چی میکنی که نام اولاد دلال فاطمه و نام اولاات نامطی همبهها میمانید نامه اوندوها و امریکای ها را کن که مدرنیزم و بابوت برست شدی خوداون میگه وات ت دا طوبات شطان شما از تاار کجت کششت نمیکنن خداون می زنا منایشی نیست زنا نکردم تو ولادت از نزنا نکردم ولادت و زنا با خود زنا نزدیک نشه با زن نامحرم دست نمیاد وقتی که با زن نامحرم دست دادی شیطان در در در, در جاهای بلند در دل زدمی را این عوامل این ذره بی شیطان این ضربه بی برسلی این ذره شیطان سرت تاثیر میکنه از این خاطر با هر عمل کرده انسان هر عمل بده انسان یک دل سیایی در قلب انسان پیدا میشه. تبا بسیار اهمیت است اه یک داغ دو داغ سه داغ چار داغ اگر ای باز توبه کرد یا دلیل میکنه توبه پاکش میکنه میشه ولی اگر توبه نکرد او داغ سیا در در فایل در, در باقی میمانه یک روز دو روز سه روز سه چه ما مزوم کالب قلب است قلب مادی نیست که ماوش ما قلب فیزیکی که میگم خون از است قلب مادی معنوی انسان که انسان معنویت هست این داغ داغ داغ کل میکنه وقتی باز شیطان نه برای ملایکه همه یکی برادر خود این که شوام هم کتم است صبح هم کتم است روز کتم است نامش هم نامم است چی میکنی برو ملایکه ایناش بده دیگه در بان این طرف این مقلاب خود ساختی باز شیطانی انسان چی میکنه؟ غلام خود میسازه خودش میگه ما آزاد استم کجا آزاد استیم کجا آزاد استی؟ غلام شیطان استی شیطان باز چی کار میکنن؟ شیطان غلام چون شیطان غلام خوده باز مدیر عمومی خود بقرار میکنن بسیار آسان است که آنم مدیرای عمومی شیطان رو بشناسن چیمه دیفته برندی که عمومی شیطان وظیفه از اینهایی است که؟ بر از نظر شیطان حقه به نظرشون بد جلوه میده و بدیرا و زینه لهم الشیطان هم اعمال قدشانه با شیطان بسن خوب جلوه میده بعضی ها دیگه اعمال بد خدا که دیوان سرچ افتخار میکنن سر چی افتخار میکنن طول به خدا شرم نیست یک جوان مرد با قدرت با همت باشل جوان از رساله اسامه ابن زید یکی بزرگان صحابه زیر باره این حرکت می کنه به طرف فتح بسیاری از کشورها اون جوانایی که اسامه ابن زید سایکو که این مردی است که پیغمبر رو تقدیم میکنه میبینن که حالی که سعی میکنه هند و افغانستان این انتقار فتح کرده جوانان بسیار امروز که ببینید یک جوان میخیزن مردی خود حتی هیچ کار نمیتونه مثل زن و در زیر دور کوه که عمر خود دور میتابایی اون طرف رقصیده میرن این چه چی این خونه ساختش ده دیگه را او دیگر دون میدان و ای دستیدم نه خیالات نیست ولی یک جواب اینواز ما آزاد است تو آزاد نیستی تو غلام هستی تو را از مردی کشیده تو را زن ساختن حتی مثل زن حرکت نیک نیابت های حتی زنای با ایمان من حضور زنای بیمان بی است زنای کافر است نه زن های مسلمان تا ما زنای مسلمان داریم که امامت قدیرو حضرت خدیجه کبری زن بود که در بین حضاره ها صحابه حضرت جبرائیل علیه السلام به او بارش می کند یا محمد و اننا نزلنا یک صلی الله علیه و سلم یک دسته 800 قبا امرای یک ضرب امرای پشت نه وقتی که آمد در زد که خدا برات سلام می فرستد ریختن بی خدیجان، رب العالمین خدا برش سلام می برسد. و برای دیدن یک باشگاه در از قصرهای های زن با شخصیت، وارد یعنی از ما، باز جوان افغان ما آنقدر به شخصیت می چکه، حتی مردی خود رو فراموش می کنه مثل رقازه هندو، رقازه های خارجی که جسم خود را در معرض دیگرها قرار می دهد، گلام غلامی می ده می کنه. گلام یعنی چی؟ گلام یعنی کسی که جسم خود را به اختیار دیگرها بده، جسم خود را دو بروشه. چشم خود برنامه نویس بگذار. این قوله است. نمی‌گم من آوا هستم چرا؟ به خاطر که شیطان ایراد چی قسم ساخته هر قدم چشمش باطل جنوبه میته و باطله در حق شده. برای صحیح که باشی، یا کسی می آید مگر مگه استاد شما چه قچی زیبایی بود؟ ادامیش تکرار کنی، تا پاس کنی، اگر در شگت لوکس و دکتایی بوشی، بچین تلکس برمی‌شه طلسمی شما به تو کار شیطان میکنی، شیطان خیارکس میس دقت میشی تازه شیطان های انسانیست، بعدی شیطان های جنی هست، شیطان های انسانیه خلالمو شیطان های جنی هست. آخر و آخر اینون از دماغ هستند که خلالمش شیطان شدن و همیشه و دیفن شیطان در روی زمین پیش میبره. این دو قسم سومین قسمت خلالمی که خیلی خود انسان خلام انسان دیده میشه وقتی که یه نظر همکم خدا رو قبول نمیکنه، کریم رو قبول نمیکنه، خایتی رو قبول تو کدوم جوان هستی که کار جدید خود داشته باشه؟ تا ما امروز با شرایط میکنیم که ما از 8 تا 10 دنگال، 10 تا 14 دنگال، 14 تا 20 تا 24 تا 28 تا 32 تا 36 تا 40 تا 44 تا 48 تا 52 تا 56 تا اتخذ احباره احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله. روایت شریف است که اینا گرفتن مسیحیان احبار و رهبان خدا احبار جنب حبر، حدر اما اولی خدا میگن عابد خدا و رهبان جنب راهب و خدا میگن چیکارن؟ یار خدای خود گفتن ارباب جنب رب اصیان یعنی خدا ها ساختن. حضرت عدی بن یک صحابی مبارک بود. به رسول خدا ما اونها رو خدای به پرستش نمیریفتیم. گفت اینا که یک نفر صلاحیت حلال و حرام باید. ای گفتی صلاحی حلال حرام از خداوند است وقتی که تو برای یک انسان گفتی که تو برای اینی حلال بساز اینی حرام بساز برو خدایی در کردی غلامش شدی ببینش با شدی پس این انسان ها عبادت دیکسی چه بالاخره امروز غلامه یکی میشن صبا غلامی دیگه میشن امروز به نظریه پوراگستی دیگه نظریه سکولاریسم دیگه نظریه فلانی فلانی بالاخره اینی نظریات که پیدا کرده میرن در حقیقت او بالای زندگی خود تطبیق میکنن خود غلام از اون میسازن و برده از اونام میسازن که ما بسیار و غلاما و برده های خارجی ها را در کشور خود بسیار زیاد دینی و دیدی و مرزنا کرده میرن فکر میکنم که من آزاد هستم کجا آزاد هستی. تو که علقه غلامی از زیر که که تا داری ولی نمید پاهمید یک کسیم غلام های دیگه هستن که غلام پیسه میشن پیسه بوتر سرات دارایی غلام انسان است این خداوند بوتران چیزها رو خل کرده که ما و شما از از استفاده بکنیم. <تصفيق> از پیسه استفاده بکنیم از موتر استفاده بکنیم موتر زیر پای اما اون مردم که غلامشون رو میخواید موتر رو در کلی خود بگردانه پیسه رو در جیب خود قید میکنه یک روز میگه قسمت پیسه که پیسه اون قدر قرزش نداره خب عرصش داره وسیله است هدف نسازه شد پیسه در اسلام خوب چیز است تا وقتی که وسیر است اما اگر پای را هدف ساختی که در روزت که او دریان نکن خترما صاحب ما نه کنم وقتی که پیسه کس ما کم گرفت غلام و غلام پیسه قلد سو یعنی من بار خس میخواستم یوک تو پیسه را بسیار می پیسه خوب چیز نیست باش نبرد یک بلیل خوب بر دشمن این دلیل خود یک سندی داشت اون تا به مصوفه شتا بود اما دنسف اول دید که قش شدا بهدارن جای تا به جای می ایمان ششتر ای, ای ماره او. که نبود آخر یا آمدن تو میگی پایه؟ هر وقت تابشش آن پایه این اوله. مجبور که ببی تا که پایه دچیه تو بود تو آخر قرار داشتی. تا وقتی که محبت پایه دادن بود که پایه جیم دو نجا، دکوچه قرار داشتی، در دا آخر قرار داشتی. که را صف اول قرار گرفتید که اول بود که را قرار از صف از این خاطر برادر عزیز کسا کسان غلام چه میشن غلام به میشن غلام سرات خود میشن از این خاطر او کسایی که باز ادعا میکنه که ما آزاد هستیم آزاد نیستن ببینن آن زنها را در غرب جانورات اگر میگن آزادی داره جامعه خوب چه جوریه یه تو ما تلویزیون مطالعه را سعی کنیم که مواد غذایی طالبی و اروپایی رسال کنیم چه قسم آزادی داره در قابل صد برشه که ببین یه موطل با دار موطل کوتی شامپو از خاطر این یک موطل که شامپو همزمان ملاق بزنه دلاری بدم اون نفری که به خاطر 500 دلار است این مرد در یک روز نه از که شرایط او که زنده است. اما شک شما از زنده شدن ما هم ما آزاد است. ما تم زارت کوچیان آزاد که جسم از چه خیالاتی شما این آزاد چیست؟ آزاد است که در چنکات قانون و نظام زندگی خود ایار بسازه یک معلم در مکتب آزاد است لیکن آزادیدی مانه از اینیست که ما باید تقسیناکات داشته باشه باید تقسیناکات داشته باشه اگر نداشته باشه پس این گدودیست مشکل اینجا چیست که بسیاری گدودی ها رو مردم فکر میکنن که ما آزاد هستم و هر کسی که بغیر از حکم خداوند مطال جل جای رو که از حکم خداوند سر میدن او که من آزاد از خداوند میتونی جزا میتشک که اون غلام نفسش میسازش غلام شیطان میسازش غلام پولس میسازش حتی غلام حیوانات شما از برای خداوند سر کنین یک وقت ما رفتیم به این وقتی که به این رفتیم عجب دینی عجب عقیده یه نگرتم غلامی برشان که میگم در دیوالت اکس شادی که اوه صدا داره ای شادی خوش میگه ای خداست اله بله به تقریب و چاق چاق در خدوان برش و خلق کرده که از گوشت از استفاده که بخوش سکرده این یک غنان گوست گوازات مداره و خونش گوشتگی میمره این وقتی برشان گفتیم گورا تو غلام حیوام شدیم یه روز اکی شما گفتم که بیدر انی شو الان علال <سؤال> نمیکن علال کنین بکوچین بخورین شکمه ایتان داشت تو گفت یوت ما مادر است مادر برای ماه بده بازم خیلی پدر بعیشک این شکل چی شنولو غلام حیوان شدن و با اساس ازی غلامی نمیتونن که ما غلام هستیم و ما این کشور خود هم داریم من نصیحت می کنم برای کسایی که عقل دارن عوش دارن دانش دارن بیین با عقل و با دانش خود قرآن عظیم شانه ما مطالعه بکنیم بیین با عقل و با عوش خود و دین مقدس اسلام درست به شکل صحیح عمل بکنیم دین قران درست بخوانیم بین از عقل خودت کار و فقط بود و مردم غلام بیشن. وکی القیف غلامی رو دو نداشت بردم میکنن وکی در تاریخ نامش بد است اتناشه که تاریخ یک وقت آل بسیار مردم برد خوب و نماتو برد تیاسه دستانت میشه دیگر از بیوی تاریخ در تاریخ واقعا سیانشتا میشه غلام غلام غلام غلام خوشش دیگه که به نظام خداوندی به امر خداوندی و به حکم خداوندی انسان خود تسلیم بکنن و اونمو آزادی که خداوند متعال داخل چوکات اسلامی بر انسانها ها داده که میتونه انسان به شکل انسانی زندگی بکنه به این خداعیار بسازه و خداوند متعال جل جل و دعا می که همه اینا و شما را توفیق نصیب بکنن که مانند و های آزاد در زیر حکم خداوند متعال جل, جل, جل زندگی الحمد لله رب العالمين. السلام و علی خیر خلقه. محمد و آل و اصحاب او تو انسان ها را آزاد خلق کردی تو ما آزاد خلق کردی شکر میکنیم به نعمت اسلام شکر به و مقدس اسلام خدا شکر که ما را بر خانی مسلمان ها پیدا کردی خدا شکر که بر ما مذهب خانی خود ما را کردی که از اینجا استفاده بکنیم خدا مارا مارا خدای شکر, بکنی. خدای شکر بر قرآن عظیم شان خدا را بر کسانی که فامیده یا فیدا نا غلامی را به گوش های خود نمی کنند خای غلامی با چه غرب باشه غلامی نفس خودشان باشه و یا با غلامی شیطان باشه به با خداوند دعا میکنیم که خدا اینا رو توفیق نصیب بکنه که به راه هدایت شدن و اگر این غلام ها باز هم هدایت نمیشن و قابل ادایت نیستن سبب فروختن کشور ما میشن سبب خرابی و ایرانی کشور ما میشن و سبب سبب بدی و بدبختی بر مسلمان ها میشن خداوند خودش رو خود به این قسم اخذ عزیز و مقتدر مثل که و رحم غرب. اللهم جل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم